در زمان قدیم پادشاهی بود در یکی از روزها وقتی روی تخت نشسته بود سفیر یکی از کشورها پیشش رسید این سفیر حتی یک کلمه هم حرف نزد فقط با گچ سفید در اطراف تخت پادشاه خطی کشید اون وقت ساکت و آروم کمی دورتر از تخت شاه قرار گرفت پادشاه که از کار او هیچی سر در نیاورده بود پرسید منظورت از این کار چیه؟ اما سفیر یک کلمه هم حرف نزد. پادشاه ناراحت شد و تمام وزیران خود را خواست تا توضیح بدن خطی که سفیر در اطراف تختش کشیده چه منظوری داشته. وزیران و درباریان به دقت اون خط را امتحان کردند ولی نتونستن چیزی ازش سر در بیارند. شاه از روی خشم فریاد زد واقعا خجالت آوره در سراسر کشور من حتی یه نفرم پیدا نمیشه که بگه خطی که دور تخت من کشیده شده چه معنی میده. شاه فورا دستور داد تا تمام دانشمندان کشور جمع بشن و مشکل این خط رو حل کنند. به علاوه گفته بود اگه دانشمندان نتونن اونو بفهمن سر همه اونا را از تنشون جدا خواهد کرد. وزیران در صدت بر اومدند تا هر چه زودتر تمام دانشمندان کشور رو پیدا کنند. به تمام شهرها و روستاها سر زدند و در هر خونه ای رو به صدا در آوردند تا اینکه به خونه‌ی بسیار کوچکی رسیدند داخل خونه شدند با هیچکی روبرو نشدند و هیچ صدایی به گوش نمی رسید و چیزی به چشم نمیخورد. فقط گهواره‌ای رو دیدند که بدون تکان خوردن کسی می جنب به وزیران شاه تعجب کردند و گفتند یعنی yani, چی موضوع چیه چرا این گهواره تکون میخوره؟ در حالی که کسی در اتاق نیست. با حیرت و تعجب به اتاق دیگه ای رفتند. در این اتاق هم یک گهواره دیگه به چشم میخورد که اون هم بی اون که کسی کنارش باشه تکون میخورد. و زیرا بیشتر تعجب کردند و بالای بام خانه رفتند. روی پشت بام دانه های گندم گذاشته شده بود تا خشک بشن، بالای گندم پرنده های کوچکی مرتب پرواز می کردند و میخواستند گندم را بخورند ولی موفق نمیشدند. چون روی پشت بام یک نی به چشم میخورد که از هر طرف تکان میخورد و پرنده رو به وحشت میانداخت. معمور شاه بیشتر تعجب کردند و به خودشون گفتند: « پس چرا این چوب اینطور تکون می میخوره؟ چون نه باد میاد و نه برگ و درختها به حرکت در میان. اصلا شاخه درختان تکون نمی خورند. از بام خانه پایین اومدند و به آخرین اتاق خانه رفتند. در این اتاق بافندهای ای رو دیدند که در برابر کارگاه خود نشسته بود و بافندگی می‌کرد. ماموران شاه پرسیدند، این چه وضعیه که در خونه تو به چشم میخوره؟ در حالی که کمترین بادی نمیوزه پس چرا در اتاقهای خالی شما که ها خود به خود تکون میخورند و حرکت میکنند و روی پشت بام خانه تو اون نی تکون میخوره؟ با فنده جواب داد چیز فوقلاده ای نیست، این من هستم که تمام این کار را انجام میدم فرستادگان شاه فریاد زدن پس تو رو دست انداختی. آخه چطور ممکنه که تو اینجا بشینی و مشغول بافندگی باشی و همه این کارا انجام بشه؟ بافنده جواب داد: البته این کارا هم زیاد ساده نیست. من سه نخ به کارگاه بافندگی خودم بستم. و سر یکی از نخها رو به اولین گهواره و سر دومی نخ رو به گهواره دیگه و سر نخ سومی رو به نی بالای پشت بوم گره زدم. موقعی که بافندگی می‌کنم، اون سنخ حرکت میکنه و دو گهواره و نی پشت بام رو هم تکون میده. فرستادگان شاه این حرف رو قبول کردند چون دیدن که سنخ از کارگاه خارج میشه، دو تاش به گهواره ها و یکی هم به نی بسته شده. همگی با تعجب گفتند اینم کارهای یه شخص بافنده. حتما تو شخص دانایی هستی و ما میتونیم از وجودت استفاده کنیم. بعد بهش گفتند باید با ما بیای تا یه مشکلی که برای پادشاه رخ داده رو حل کنی بافنده گفت اول به من بگید موضوع از چه قراره وزیران گفتند سفیر یکی از پادشاهان خارجی به خدمت پادشاه رسیده و با گهچ دور تخت شاه خطی کشیده هیچ کس حتی خود پادشاه و درباریان نمیتونن حدس بزنند که منظور سفیر از این کار چیه؟ ما هم به دستور شاه به دنبال شخص دانایی می میگردیم تا بتونه به مفهوم خط اطراف تخت پی ببره اگه تو بتونی این مشکل رو حل کنی پادشاه جایزه با ارزشی بهت میده وقتی بافنده حرفهای ماموران شاه را شنید به فکر فرو رفت بعد دوتا قاب که بچه‌ها با اون بازی میکنند برداشت و در جیبش گذاشت و یه مرق هم گرفت وزیران با تعجب نگاهش کردند و از او پرسیدند با این مرغ چیکار میخوای بکنی؟ بافنده با سادگی گفت: بهش احتیاج دارم. بعد مرغ رو در یک سبد قرار داد. اون وقت همگی پیش پادشاه رفتند. بافنده وارد باغه شاه شد، به شاه سلام کرد و خط سفیدی که دور تخت به چشمی خورد، با دقت نگاه کرد. بعد به طرف سفیر خارجی نظری انداخت و لبخندی زد و به طرف او آن دو قاب بازی رو پرت کرد. معمور خارجی بدون اون که کلمه ای به زبان بیاره از جیبش یه مشت ارزن بیرون آورد و اونا رو روی زمین ریخت. با خندید. مرغ رو از سبدش درآورد و به سوی ارزنها رها ساخت. مرغ هم به خوردن ارزنها پرداخت و بعد از لحظه ای حتی یک دونه ارزن هم روی زمین نموند. با دیدن این بحث سفیر خارجی بیان آنکه کلمه ای بگه فوراً از اونجا خارج شد. پادشاه و تمام اشخاصی که در اونجا حاضر بودند کارهای آن سفیر و بافنده رو با تعجب نگاه می کردند و هیچ کدوم از کارهای اون دو نفر سردر نیاوردند. پادشاه پرسید این خارجی چه کار کرد؟ بافنده جواب داد او میخواست بفهمونه که شاه کشورش خودش رو برای جنگ با ما آماده کرده و میخواد از هر طرف به ما حمله کنه بنابراین میخواست بدونه که شما تسلیم میشید یا جنگ میکنید منظورش از خطی که دور تخت شما کشید همین بود پادشاه جواب داد بسیار خوب اینو فهمیدم اما متوجه نشدم چرا جلوه اون اون قاب ها رو انداختی؟ بافنده گفت من قاب ها رو پیش او انداختم تا بدونه که خیلی قوی هستیم و اونا نمیتونن ما را شکست بدن به علاوه به او فهماندم که شما هنوز مثل بچه ها هستید بنابراین بهتر در کشورتون بمونید و مثل بچه ها قاب بازی کنید و بی جهت در صدت بر نیایید که با ما جنگ کنید پادشا گفت خیلی خوب فهمیدم حالا بگو ببینم چرا اون مرد خارجی روی زمین یه مشت ارزن ریخت و چرا تو درآوردی؟ بافنده گفت توضیحش زیاد مشکل نیست او روی زمینی مشت ارزن ریخت تا به ما نشون بده که لشکریانشون خیلی زیاده منم مرغ رو رها کردم و بهش نشون دادم که اگه اونا با ما جنگ کنن حتی یه نفر از لشکریانشم زنده نخواهد موند خب آیا اون مرد خارجی همه اینا رو فهمید؟ بله فهمید وگرنه از اینجا فرار نمیکرد. برای همینه که به منظور ما پی برد پادشاه به بافنده دانو حدیه با ارزشی داد و بهش گفت بافنده پس همینجا بمون تا تو رو وزیر خودم بکنم بافنده جواب داد نه من نمیتونم وزیر کشور بشم کار دیگه ای در پیش گرفتم و مجبورم اونو ادامه بدم